کمی در اتاق راه رفت بعد رجب را صدا زد از او پرسید از کجا فهمیدی که خانهش را تفتیش کردند رجب آرام جواب داد وقتی فهاد مینزا را با یک اتومبیل به خانه آوردند خودم سر خیابان ایستاده بودم پرسید کی؟ گفت همین یک ساعت پیش به ساعتش نگاه کرد و پرسید الان چه ساعتی است یک ساعت بعد از ظهر بود فرهاد میزا تو رو دید بله آقا علامتی هم داد نه خیر آقا هیچ به روی خود نیاورد اون وقتی برمیگشتند از سوی اتومبیل نگاهی به من انداخت مثل اینکه خوشحال بود از اینکه شما گرفتاریش رو فهمیدی رجب نفهمیدی که از خانهاش چه بردند رجب گفت مسار خیابان رئیس بوده بودم و خانه او عواسط کوچه است نفهمیدم در اتومبیل چیست خیلی بد کاری کردی خیلی اوقات مرا تخلف کردی مگر چنین قراری بود که هر کس سر خود کار کند دیگر کاری است که شده اگر گیر بیفتی تقصیر خودت است حالا باید کاری بکنیم اگر اسباب اوراق او را برده باشند که هیچ اگر نبردند باید فهمید که کجاست بود که آنها را در همین دو سه روزه به جای دیگری منتقل کرده باشد. نمیدانم آنها را کجا برده؟ دو چیز را باید بفهمیم. یکی اینکه او را به چه تا می گرفتند و دیگران که اسباب و لوازم کار ما را بردند یا نه. آن وقت کمی فکر کرد و به رجب گفت؟ جایی نرو، باش تا کمی فکر کنیم. اگر رجب که از اتاق بیرون رفت من گفتم: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 تو، آره من، گفت، نه نه این کار تو نیست، گفتم، چرا، برای اینکه من بیارزم، شما هیچ وقت کار دوشوار به من روشی نکردی، من یه خون من از خود آنهایی که ریخته است، رنگین است، گفت، صحبت از این حرف ها نیست، این کار دقیق است و نباید آدمی مانند تو را به خطر انداخت، از تو باید برای کارهای دیگر استفاده کرد همیشه بهانش همین بود از ارجاع کارهای خطرناک به من خودداری میکرد آیا برای این بود که به وجود من دلبستگی پیدا کرده بود یا اینکه واقعاً واقعا برای من اهمیت بیشتری قائل بود آن وقت گفت به علاوه فرهاد میزا ترک زبان از تو را نمیشناسد و به جای خواهرزاده او نمی شود تو را جازد فرهاد میرزا اسم قلابی اوست گفتم من می توانم یا زن او باشم گفت اگر خودت را بگیرند چه گفتم آن وقت خوش است که وقتی از زندان بیرون آمدم یک بار دیگر دوید توی حرف من اگر تو را بگیرند طی نمی کشد که مرا همسر سربنیز خواهند کرد. دیگران وقت هرگز مرا نخواهی دید. گفتم: nah, « نه، من نمیگذارم تو را بکشند. چند اندخت و ظروف را چند مرتبه با انگشتان دراز و قطورش شانه کرد. سرش را چند بار چرخاند و گفت از دست تو کاری ساخته نیست. چطور می خواهی پیش او بروی؟ گفتم هر جور که تو دستور بدهی گذشته از این من با رئیس شهبانی هم شخصا آشنا هستم و یقین دارم که اگر از او چنین خواهشی بکنم حتما جواب رد نخواهد داد او را از پاریس می شنسم. به علاوه خیشه دوری هم با پدرم دارد میدانی که او پدرم را از قزوین به کربلا فرستاد دیگر حسودیش شد همین یک بار بود که او گذشته من اشاره کرد پرسید او هم یکی از کسانی است که فریفته چشمهای تو شده گفتم من سراغ ندارم که کسی فریفته چشمهای من شده باشد گفت اما من سراغ دارم گفتم اقلا پس بگو کیست خیره به من نگاه کرد اما هیچ نگفت من با این نگاه‌های او آشنا بودم از صورتش از حرکاتش و اخ‌های آن چیزی در نمی‌آمد پس از مدتی با لحن اعتراض اضافه کرد چرا میخوای از من حرف در بیاری بگذار به کارمان برسیم چند دقیقه در اتاق راه رفت گاهی میست داد و مبهود به من نگاه می کرد. سه را تکان می داد و بعد باز روبروی یکی از تابلوهایش هایش می داد و با انگشتانش گرد, رو... گرد روی آنها را رو پاک می کرد و به درختان پوشید از برف می دگلیست. نگهان گفت فرنگیس برو برو از پیش من هر کاری دلت می بکن من فقط دو چیز را می خواهم بدانم دیشین که و اسباب را هم بردند و دیگران که چطور او را گرفتند پرسیدم فرهاد میزا چه جور آدمی است کمی درباره او صحبت کنید تا بدانم چگونه با او روبرو شوم آن وقت فرهاد میزا را به من معرفی کرد پسری بود 25 ساله تازه دانشگاه پزشکی را تمام کرده بود پدرش از مالکین زنجان بود و فوت کرده است. مادرش در زنجان زندگی می کند. پدرش در سابق از تفنگدارهای خانه زنجان بود و مدتی هم یاقیگری می کرده است. پس از کودتا به او تأمین دادند. قرآن مح کردند. بعد از مدتی گرفتندش و در زندان قص از پیتریاکی مرد. فرهارد میزا قد متوسط دارد. در صورتش ته دیده می شود. تند و عصبانی حرف می زند. شوخ و بامزه است. پا بر با دوام است. اما خودخواه هایی دارد که مخصوص به خودش است. ترسو نیست اما تظاهر به بیباکی می کند. هر کاری را سهل می گیرد. در دانشگاه هم که بود نمی توانست جلد دهان خود را بگیرد. طور که در محیط ترس و وحشتی که حکم فرما بود،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 تنخوش میکنه و همین بی ها یکی از دلیل گرفتاری او باید باشد خانه او در ایک از کوچه های خیابان ری جلو بازارچه نایب و سطنه است اسم خودش محسن کمال و اسم پدرش هرچه فکر کرد نتوانه پدرش را به خاطر بیاورد به من گفت در زنجان به اسم حاجی کمال معروف بوده اگر از تو پدرش را پرسیدند میگویی چون مرده است نمیدانم اسم مادرش را هم نمیدانم پرسیدم عکسی از او ندارید که خودم بشناسمش گفت عکس ندارم اما الان چند طرح از او میسازم نشست کنار میز تحریرش با مداد سیاه قطوری روی مقوای کلو شروع کرد به تصویر صورت او را کشیدن مثل این که با خودش دارد حرف می‌زند. علائم صورت او را با صدای بلند میگفت پیشانی بلندی دارد. زولفهش را به یک ور باز می‌کند. سبیل می‌گذارد. هیچ خط لطیفی در سیمایش نیست. بینی بزرگ و لب‌های کلف دارد. رنگ صورتش تیره است و به محض اینکه عصبانی می‌شود تمام صورتش را خون فرا می‌گیرد.